و اینک بهشت تقدیم به روح بلند و آسمانی شهید جعفر نجاتی کارگردان صادق پروین آشتیانی نویسنده محمد حسین بنی احمدی بازیگران فریبا طالبی در نقش هانیه پروین ملکی در نقش طاهر خانوم میلاد رحیمی در نقش امیر محمد ابپری در نقش پدر هانیه اسماعیل خلج در نقش سقّا جلیل فرجاد در نقش حاج کاظمی و افسانه ناصری در نقش مادر حانی آهنگساز مهدی گورنگی تهیه کننده حسین بنی احمدی نخلستونی نیمه آباد زیر بار خونپاره ها می سوز و منفجر می شه جوونی از پشت خاکریز به نخلستونی پره و شروع می کنه به تیل به بحثی ها. جوان دیگه ای وارد خونه مخربه‌ای میشه و کمی دورتر پشت سرش خونپاره ای منفجر میشه. جوون گوشه پناه میگیره و پی کسی نمیگرده. حسین حسین جوانه توی نخل از نخل سون فرار میکنه دزماندی از پشت خاکریز با دوربینی سرک می‌کشه که خاکریز به لگ بار بسته میشه. دزماندی به پشت خاکریز میره و وقتی دوباره سر بلند می‌کنه، دوربین عکاسی به دست داره و مشغول عکاسی میشه. خودم از پشت خاکریز به سمت دشمن میرم. دستم دیگه داخل خرابه هم چنان مشغول گشتن. نمیدیرم ما دوم شدید عکاس لابلا یه بمب و خمپاره مشغول عکاسی درگیری سنگینه و بحثی ها کل منطقه رو به خمپاره بستن یکی از سربازها به عکاس میرسه و اونو خطاب قراره بابو جی تو کون دا بعد ہم کی چھپتے ہیں ہمجپور خاک و دود و آتیشه میں ہوا کیا ہے ڈٹ سنگری برای اونها دست کمیده و بتیر اندازش ادامه می بلاخره حسین هم خودشو به برقیه می هر کدوم به سمتی <متحب> می رن و تیر اندازی می کنارو حسین منفجر می شد و حسین به نقش زمین می لحظه ای بعد حسین از جاش بلند میشه اما هدف چندین گلوله قرار میگه رو به زمین میفید اکاس هم شهید میشه و دوربینش گوشه میرفته بزنید رزمنده یه که شاهد شهادت دوستانش بوده لنگ لنگون به میون خندقی میان خندقی میاند اما بعد چند انفجار پشت سر هم حرف میشه کنار سنگری نیمکاره و از درد به خودش میگیشه پای مصنوعی مرد به گوشه پرت شد رزمنده ی جانباز پلاک را از گردنش جدا می کنه و نگاهی به پلاک خونه آلودش می کنه خونپاره کنارش منفجر می شه و اون هم به شاده رو برسه این فجار های خالی از هر رزمنده ای شده اما انفجار ادامه داره و دود و خاک و آتیش همه جا رو گر سهران ساله 1390 آپارتمانی نقلی که کسی به تلفن جواب نمیده بلاخره در اتاقی باز میشه و دختری با روپوش سفید و نوار فیلم اکاسی دست خودشو به تلفون میرسونه اومدم اومدم کشت خودشو علا سلام چطوری؟ تو تاریخ خونه بودم نشنیدم اما هنوز مشغول دیدن نگاتیب اکساست میگم تو تاریخ خونه بودم نشنیدم یعنی چی آها جنابالی که این حرف من باور کردین که این بار تون باشه بله خوبم تو که کار تاموشه امیر تو قرار بود سه شمبه برگردی که تو هم که خراب شدی. با تو نیستم نگاتیب میگم نگاتیب امیر امیر من الان کلاس رو هم دیرم شده خودم بهت زعی میزنم او شکل ما که تمومی نداره حداقل اجازه بدید من برم به کلاسام برسم. نه باشه فیلن دختر به سمت کاناپهی میره و روی اون میشینه نگاهی به گوشی تلفون میدازه و از راحتی بلند میشه و گوشی رو میدازه روی کاناپه دختر از راه روی دانشگاه رد میشه و خودش رو به در کلاس میرسونه مظهری کلاس چیم شده؟ خیلی وقت داره تماما شده پانیه نگاهی به ذاتش میدازه و به داخل کلاس میدازه تو بابا توسط شستشوی در آب انجام میشه پس از اون مرحله استوگوته که دو دقیقه برای زمان میذاریم استاد اجازه میدهی تا هانی وارد کلاس بشه و مرحله بعدی هم <محله استابلازر> مرحله استابلایزر هست یک دقیقه زمان میبره چرا اینقدر مرحله سوتی سویا دست شوت شده شو, شو, شو هست که 5 همچنین عوامل موثر در کنترل کنترل درامون یا فرست متفاوت شده حالش خوبش نمیشه استاد روی میز میزنه تا دانشجوها سکوت کنند دوست هانی هم کاغذی به اون میده تا حرف بزنن خودشون توجه بشه و هر دو ساکت میشن چلوست تموم شده و هانیه به همراه دوستش راه راهروی دانشکده میشه. چه لزومی داره دانشجو سال 1390 بره وارد درسی لابراتوار و چاپکس رنگ‌های تزخرفات خاص کنه؟ الان دیگه اکثر دیجیتال میندازن. واقعاً که والله بخدا اعصاب دانیه. ببین دانش توی عکاسی باید همه این وارد رو پاس کنه. پس یه دلیل داره که این وارد رو برامون گذاشتن دیگه. باش. ولی من اعتقادی به این سیستم سنتی ندارم، خانوم. این هزار بار نداشته باش حالا این کس قبلی چی شد؟ چه میدونم با پا گفتش که باید بین بیست و پنجا تا فرمکس آمده کنیم برای پایام ترم نگاتیب حضرته با موضوع آزاد <مح> <مح> میبینم نیستم با پنجا تا نگاتیب نیستم با موضوع آزاد نیستم خونه شیک و دوبلکس و میز شامی مجلل که هانیه به همراه پدر و مادرش دورش نشستن و شام میخورن هانیه با ذهنی مشغول فقط با چنگال و کاغذ بازی میکنه پدر اشارهی به مادر میکنه و دلیل حال هانیه رو با ایما اشاره میپرسه مادر کلافه و مخالف به پدر اشاره میکنه که بس کن نیگه خب دخترم بگو ببینم این دفعه کجا رفته حالا جنوب مناطق جنگی نفهمیدم واسه جنگ رفته خانم مگه جنگ هنوز بابا اذیت نکن وسیله کار شرکتشون رفته دیگه کار ساختموسازیو این داستانا آقا مهندس آقای مهندس تعالو کاری نداری ولی اینم شغل امیر انتخاب کرده حالی که okay, میاد قرار بود بیاد ماما با شغلش که مشکلی ندارم من با رفتار این آدم مشکل دارم احساس میکنم دیگه اصلا من رو حرفای من برایش مسخره است. کاره من برایش اصلای کاره بی خوده دیگه اصلا روحیات منو درک نمی کنه. احساس میکنم واسه هم دور شدیم ماما ببین هانیه من از روز اول گفتم اینا هم لبل ما نیستن اینا هم شعن ما نیستند اصلا خانم هیچیشون به ما نمیخوره اما تو قبول نکردی. حالا من و مادرت باید به آتیش تو بسوزیم همین بل کن دیگه محمود چشپانو پدر دو دستش روی دهن میذاره تا بگه که بس کرده خانیه جا قضا تو خوردی مادر باش برای یه بهش بسر اونینه نگاهی به کوشیه تلفنش میکنه و از پشت میز پاچه خودت زنگ بزن سلام خونه ماماینا باشه اینا هم سلام میرسون خوبه اینا هم با روی پله های داخل خونه میشینه و به صحبتش ادامه میده چی برای چه واضیه برای من درست کردی تو تازه دو سه هفته دیگه میخای اونجا بمونی امیم من تنها تو خونه می ترسمیم و می فهمی. خب مشکلی میتونم بیام اینجا. بس بس یعنی چیم هف؟ خیلی خوب. کجا ببرم؟ هانی با ساکی به بغل نشسته تو یه ماشین سواری. ادهی جمع شدن توی محلی و جوانی مشغول گردوندن آتیشتون و اسفنده جمعیت اعظم سفر به نظر مید. دختر کوچولویی سربند قرمز به پیشونی بسته و جوانی شفیه به گردن بگید با تاج گل و سربند و شفیه تاق نصرت کوچولویی درست شده که به در اوتی پسکت میشه امام از را با من فردیارت کنید و اون سنوات جایی در قطع را با من آجانس هانی به جمعیت میرسه و میزه هانی هم با ساکش از ماشین پیاده میشه از مردم سراغ کسی رو میگیره و اونو راهنمایی میکنن به طرف در اوتوبوس به بخشی تا جگه داودی؟ بله بله خودم هستم بخرمه سلام من. من همسر امیر سماواتی هستم امیر سماواتی؟ بله بله در خدمتتون هستم بفرمایید. ظاهرا قرار شده بسره شخصی امیر رو بدم به شما زحمت بکشید برس تا دستش. چاش در خدمتتون هستم انجام وظیفه است. ممنون. خواهش میکنم. خواهش می‌کنم. خدایا نجاتت. همین رو تحویل میده و از اتوبوس فاصله می‌گیره. موقع برگشت نگاهی به جمعیت و مردم می‌اندازد. گوشه میسته و دوربینش رو به سمت مردم نشونه می‌گیره. چند تا عکس می‌گیره از بین جمعیت، سوژه هایی رو برای عکاسی انتخاب می‌کنه. دوربین هانیه بین جمعیت می‌گرده و دائم لنز دوربین به عقب و جلو می‌ره. عکس یه بچه، عکس یه مرد میانسال، عکس خانم جوانی با دخترش، و عکس خانم مسنی که خیره شده به لنز دوربین هانیه. با لبخندون و نگاه مهربون و اتفاقاست. دوربین رو از جلوی صورتش برمی‌داره و به زن نگاه می‌کنه. پیرزن هم در حاله که تسبیح می‌زنه و ذکر می‌گه به هانیه با سر سلام می‌کنه. هانی هم جواب سلامش رو میده و نگاه‌های این دو با هم گره می‌خورد. قراروخاله محترم بفرمایید سواشی تا با امید خدا سر حرکت کنید. بفرمایید خواهش می‌کنم. پیرزن میشه سوژه عکاسی هانی. پیرزن می‌خواد چمدونش رو برداره که نخ تسبیحش پاره میشه و دونه‌های تسبیحش پخش میشه روی زمین. همه ها رو خانیه از لنز دوربینش میبینه خانیه دست از اکاسی میکشه و به سمت پیرزم میده آج خانوم دونه های تصفیهش رو جمع میکنه و چندهایی رو که دست خانیه است ازش میگیره و میره به سمت دوربینست خوربون دستات برام دخترم خدا نکنم بفر دست درد نکنه مادر چیزهایی از ذهن خانیه میبسر و نگاهی به کاروان راهیانه نوربین دسته خاش خانم سواره اوتوبوس شده و هنوز نگاهش گره خورده به خانه خانه به دم راهروی روی سبز ورودی اوتوبوس میره و روبروی تاق نصره میزده تصمیماتی به ذهنش میرسه و افکاری تو نگاهش نقش میره اوتوبوس زرد رنگ کاروان راهیان نور راهی جاده میشه و به سی و پنج کلومتری قوم نشسته داخل اتوبوس و با موبایلش حرف مزن یه حالی ترسیم مگرفته هوا تو که معنا میشناسی. نه. بیش نگفت. کاشام یهوی منو ببینه غافلگیر شه. چرا گندم که اینجوری؟ آره، از مسئول کاروان اجازه گرفتم. اونم برای چی باید ناراحت نه. مادر سیام به زای نگاه هانیه نکته رو زیر نظر گرفته. از جاش بلند میشه و میره چند ردیف جلوته آج خانوم تنها نشسته و حانیه میره کنارش میشینه اجازه هست بشین عزیزم اینجا دوهای فرده خیلی من نمید حانیه سعی میکنه یه جوری سر صحبت رو باز کنه اسم من حانیه است. زار الله خواهی قسمت هم مثل خودت اسم شما چیه؟ بطورم بپرسم وقتی به دنیا آمدم پدر مادرم ایران دخ اسمامو گذاشتیم ازدباش که کردم شوهرم گفت اسم سختیه تاهره صدام میکرم پس اون به بعد تاهره مندروم بگه تنها اومدیم؟ نه عزیزم تو با من. خب بله ولی تا آخر سفر همراه تو نیستم دوتر از شما پیاده میشم آخه دارم میرم پیش شوهرم نزدیک که خورم شهر کار میکن خدا حفظش کنه من دارم بچه چی؟ بچم داری دوتا پسر داره. پسر بزرگم سال 63 توفک شهید شد سرکوچیکم هم توش علمچه منتظرم قراره یه چیزی بهم هم بده طفلک بچم اینقدر خجالتیه که به هیچ کسرونشو نمیده بخوام برم اونو بگیرم توان باید به هم کمک کنیم عشق ازگوشی چشم تاهر خانم سراسیه باشه تاهر خانم به راه خیره میشه و هانی هم با دوربینش مشغول میشه اوتوبوس توی پیچ و واپیچ جاده روونه میشه به خورنم نمی منم عین تو عکاسه اسمش آقا محمد رضا با دوربین از اون تو حمرو نگاه میکنه شیطونه تو جالب من دانشجو عکاسی ام دیگه این دوربین تمام وجودم شده الان میخوام واسه این تانه پایان تم کلی عکس بدم البته اگه بشه هانی هم از فرصت استفاده میکنه و از مسافرها عکس میگیره اکس یه دختر کوچولو با مادرش، اکس یه مرد میانسار و اکس زن و مرد جوونی که برای دوربین دست کن شب شده اوتوبوز جلوی یه رسطوران و استراحتگاه میسته خانیه روی تختی نشسته و تاهر خانم میاد و کنارش میشه خانیه جا دخترم به چی داری نگاه میکنی؟ به ستاره ها احساس میکنم خیلی به همون نزدیکم آسمون پر ستاره هست میگن هر آدمی یه ستاره تو آسمون خدا داره با تولدش ستاره شوشن میشه با رفتنشم پاموش شما ستاره خودتو میشنسی؟ ستاره خودم که نه. ولی اون دوتا تا ستاره رو می‌بینی که از همه پرنورتره. هم؟ فکر میکنم اونا دوتا تا پسرای منن. دو ستاره پرنور کمی دور از هم تو آسمون دیده میشه. آه. چه جاله. هانیه دن دیدن ستاره‌ها سری تکون میده. هانیه متوجه بوی خوبی میشه و چند بار بو می‌کشه. چه بیا. میواد می شماس هر وقت قزو میگیرم قصه نماز خوندن دارم هر وقت سر حالمو حوصله دارم از این عتبو خودم میزنم چند سال قبل پسرم از کربلا برام سوغاتی آورد شقردم پربرکتی هر چی میذنم تمام نمیشه تاهر خانم از عطرش به موچه دستهایی میزنم کاروان به راهش ادامه میده چشای مسافرها به راه و منتظرن که زودتر برسن بعضی به نوار روزه و مرسیه گوش میدن خانمی کتاب دعاشو باز کرده و میخونه بعضی هم به خواب رفتن تاهر خانوم زیر لب چیزی زمزمه میکنه هانی هم نگاهی به تاهر خانوم میدازه و سرخوش از همسفری باهاش حانیه با سرخوشی ششو روی هم میذار و به خواب میره تاهر خانم حانیه تو یکی از اتاقهای زائر سرا با هم هستن و خانیه دو تا لیوان چای میگیزه بفرمایید بحبه. چه چایی خوش رنگیه قربون دست داد نوشه جان خستگی سفر در میاره هانیه جان میشه ازت خواهش کنم این تصویرو برام برم نخ کنی چشمام دیگه سمونه داره حتما هانیه لیوان چای رو کنار میذاره و نایدان تصویر رو از تاهر خانم میگیده تصویر قشنگه ها گفته باشم تاهره خانم سرشو به علامت تعیید تکون میده یه عمری این تسبیح هم دمی منه باشه نخش میکنم به شرط این که پیشم بمونه تا چند تا خوشگل ازش بگیرم قبوله؟ صبح شده و خرشید اولین شعاهای تلایی خوشگلشو هدیه کرده بزنید هانی به جلوی آینه میره و سر سرو وزش رو مرتب میکنه هانی کیفش رو به دوش میذاره و به طرف در میره اما دوباره بر میگرده چون تصفیه رو جا گذاشته بوده تصفیه تاره خانم رو بر داره و به راه میفته اوتوبوس خوشرنگ و قشنگ راهیان نور باز به مسیرش ادامه ده مسافرها چشم به راه دوختن و انتظار تو نگاهشون موج می‌زد. خانی نگاهی به بیرون می‌اندازه. کنار تلهای خاکی و تپه‌های کوچیک، تانک‌ها و نفربرهای اسقاطی و مستعمل دوران جنگ رها شده. سفرامون ساکتند ظاهرشون ساکته دخترم تو دلشون قوقاست چرا لحظه به لحظه این مسیر بچه به بچه این خاکا یاد عزیزی رو تو دلشون زنده می‌کنه هر کدوم از اینا یه قسمتی از وجودشون رو تو این مناطق جا گذاشتن عزیزترینامشون رو پاره تنشون جنگو دوست ندارم آدماشو خوشونتشو هیچ چیشو دوست ندارم بی‌انصاف نباشانیتون آدم های این جنگ عزیزای اینا به خاطر دفاع از من تو جونشون را دست دادن. دختر گلن میشه به این قضیه خورده منطقی نگاه کرد آره من آدم منطقی نیستم همم هم همین ایرادو ازم می گیرم امیرم همین مشکلو با من داره اصلا حرف همو نمی تو چشتری؟ داشتم ولی الان دیگه نمی دونم. داری چون به خاطرش داری میری اونجا اصلا حرفای منو باور نمیکنه. کارای من براش مسخره است، بی ارزش. اون احساس من درک نمیکنه. البته این یه قسمتش طبیعیه دخترم. زمان میخواد تا آدمو دیگر رو باور کنه. نمیدونم. اصلاً حوصله توضیح خودمو ندارم. تا حالا شده حرفی بهش بزنی باور نکنه ولی خودت باور داشته باشی؟ برای اون چه فرق میکنه امتحان کن دخترم اگه خودت حرفت رو باور داشته باشی مطمئن باشون هم باور میکنن اوتوبوس کاروان گوشهی نیست و مسافرها یکی یکی پیاده میشن شایرد اوتوبوس ساکه حانیه را از جای بار اوتوبوس در میار و تحفیل حانیه موید حانیه چند قدمی برموداره اما یه حسی اونو از رفتن باز می‌داره و برمیگرده پیش تاهر خانو. تاهر خانو. جانی دل. یه تو بمانی گنکی. هم هم دوربین رو به طرف تاهر خانوم میگیره و اکاسی میکنه چکس قشنگی شد خیلی خوب شد من برم امیر رو بیارم شما ببینیدش فقط یه چیزی یه کوچولو رو نصیحتش کنی چند یه بیشتر من درک کرد الان برمیگرد حانی از کارگری سراغ امیر رو میگیره و اون جای امیر رو نشونه حانیه بخش. بخش. بقیده بخش. بقیده بخش. <متحسن> امیر مشغول هدایت کارگر هاست که یه هم متوجه رو حانیه میشه حانیه <متحسن> <متحسن> دستی برای امیر تکنه امريكا دستبار میکشه و حیرون می سمت هانیم سلام سلام اگه فکر میکنی الان تعجب میکنم از اینکه اومدی اینجا باید بگم اشتباه میکنی دیگه این کارات برام تازگی نداره هانیم من تو فکری نکردم برای چی اومدی اونجا؟ اومدی که روی من رو کم کنی؟ وای چه استقبال گرم قبل از که بیشتر تحویلم بگیری یه دقیقه با بیا یه نفر منتظرته میخواد ببینتت بعدن کلی وقت داری بسی جر رو, رو بس کرده کی منتظره؟ یکی از همسفرام امیر فوقولاده است بیا بهت میگم امیر کیفو از هانیه میگی؟ آنیو آمیل به جمع کاروانی راهیان نون می‌کند. آنگی با چشوش دنبال تاهر می‌گردد. بعد نگاهی به داخل اتوبوس می‌دهد. خبری از تاهر خانوم نیست؟ پایی به صورت لانه پیوسته می‌شود. به شما تو آهار خانم ندیدیم. من اسم مسافر هامو کنن می‌دونم. همی خانم همراه من بود. همراه شما نمی‌دونم. امشک عسلو نمیدم. ای بابا، همی حاشیه خانم خوشی و اینجا با ایستاده بود آلان. خانم آتیم آمده. نمی‌دونم چیو می‌گیم. بیا بریم خدا خیرت‌تون داده. آقاای خانم بفرمایید بالا برویم. بفرمایید. مسافرها سوار اتوبوس میشن و هانیه می لابلای مسافرها رو حسابی دید می میزنه. اوتوبوس به راهش ادامه میده. 20 کیلومتر مونده به خردوش. هانیه پیرو میده و امیر هم منتظر. اسمش تاهر خانم بود خیلی ماه بود امیر امیر از داخل یخچا لیوانی آب برای حانیه میاره باید میدیدیش حانی و امیر تو استراحتگاه محل کار امیر هستن حالا که قسمت نبود نکنه جاش گذاشتن هانیه، اون کاروان خودش مدیر داره مسئول داره خودشون بهتر از من و تو میتونن هوای مسافراشون رو داشته باشه آخه باش خدافزی نکردم بای خدافزی نکرده چه مسئله مهمی مسخلم نکنم ایر آخه تو که نمیدونی چه موجود فوقالادهی بود وجودش یه آرامش عجیبی بهم به میداد یه حس عجیبی داشت البته استثناهن اینو میتونم حدس بزن اما شون بعلاوه تو از هرکسی که خوشت نمیاد، احتمالاً اونهاش خانم خیلی آدم ویژه بوده که داره جذب کرده. آره خیلی دوستشتنی بود، خیلی ماه بود، یکی افت. حانی دست به دوربینش میبره و سعی میکنه بهین عکس‌ها عکس تاهر خانم رو پیدا کنه تا نشونه امیر بده. همه یه اکس ها هست الا اکس تاهره خانم یعنی چیه چی شده چطور ممکنه میگی چی شده یا نه اکساش نیست اکسای کی نیست تاهره خانم هیچ کدوم از اکساش نیست حبلا بود حواست نبود دیلیتشون کردیم نه امیر من هیچ کدوم از اکسال پاک نکردم چه میدونم شبه اصلا اکسی داشت نه انداختی فکر میکنی انداختیم میخواهش میکنم مثل بچه ها با من حرف نزن تمام اکسا هست فقط عکسی که ازش انداختم نیست همه رو کامل دیدی؟ آره بابا دیدم عجیب میدونی چیه که اکسا هست با تمام جزئیاتش هم هست فقط تصویر تو آره خانم نیست چه شگفتنگیست امیر خواهش میکنم یه ذای جدی باش من دارم از تجاب شاخ در میارم ولی برای من اصلا عجیب نیست مثل همه کارهای عجیب و غریب دیگت مثل اومدن ناگهانیت به اینجا مثل هزار تا داستان بی سروتر دیگه ای که برام سرهم کردی اصلا برام عجیب نیست امیر حانیه رو تنها میذاره امیرم سر کارن همی کمی سرایت کن چون حالت بیاد سر جاش اما حانی دوربینشو رحا میکنه و میره دنباله امیر به خدا دیوونه نشده برای یه دفن بیش دارف من بابر کن پانیه به اتاق استراحت برمی و وسائلش رو برد می امین هم مشغول کارش با کار باشه نی نگاهی به امیر میندازه و بی بی‌خداحافظی از امیر کارگاه رو ترک می‌کنه. امیر متوجه رفتن هانیه میشه. حالا امیر میره به دنبال هانیه تا منصرفش کنه. من دیگه حرفی با تو ندارم بلی من حرفی دارم تو زن منی حق نداری بدون اجازه من جایی داری میفهمی یا نه نمیفهم کجا میخوای بری بریانیه تهاره خانم میگفت اگه حرفی بزنم که خودم باورش داشته باشم تو هم حتما باورش میکنی میخوام برم پیداش کنم که خودم به باور برسم من میخوام حرفم به حسابم ثابت کنم. بعدش برمیگردم تهران. خیلی خوب. حرفتو ثابت کن. ولی نه اینطوری. یه درصدی حساب کنم با تو میام. باشه. هانی خواهش می کنم. هانی رضایت میده تا امیر هم آماده بشه و با اون بیاد. امیر میره تا وسایل سفر رو آماده کنه. امیر وحانی با یه تویوتا وانت به شهر میاد. امیر نگاهی ناباور به هانی میندازه و هانی هم جستجو گرانه خیره شده به جاده. ماشین امیر وحانی از تابلو 10 کیلومتری شلمچه عبور می کنه. تو به اتوبوس نارنجی رنگ می‌رسن. امیر از اتوبوس صبغت می‌گیره و به راهش ادامه می‌ده. اتوبوس این نیست؟ نه امیر. اتوبوسی که بود. مگه ندیدیش؟ هانیو امیر به یکی از محل‌های استقرار کاروان‌های راهیان نور می‌رسد. پانی از ماشین پیاده میشه و نگاهی به جمعیت مینزه تا تاهر خانم رو پیدا کنه رو به حانیه میرسونه و به اون چادر میده تا چادر سر کنه. حانیه هم چادر به سر میکنه. هانیه بین جمعیت میشرخ و به تک تک چهره ها نگاه میکنه. امیر هم منتظره تا حانیه گمشدش رو پیدا کنه و متحیر اون رو نگاه میکنه. هانیه مدیر کاروان رو میبینه و به سمت اون میره. سلام آج اقا، خوب هستی؟ سلام دفترم، شما خوب هستی؟ خیلی ممنون حانه با اشاره به امیر ازش میخواد تو به اونها به پیبنده؟ سلام هستن آج اقا سلام علیکم ببخشید آج اقا، شما تاهر خانمو ندیدی؟ تاهر خانم؟ بله همون هاش خانم که همراه من بود تو سفر کنار من نشسته بود کدوم خانم مگه شما تنها نبودیم پانیه یک که میخوره و گرق حیرت میشه امیر هم از اتفاقات و این حرف حسابی سردرگم شده حانیه همچنان به گشتن به این آدم ادامه میده. حانیه و امیه به دفتر مدیریت کاروان های منطقه شلم چه میدهد. باج مدیر دفتر نگاهی به لیست کاروان ها فامیلشون رو شنو نمیدونید؟ نه آج آقا. فقط میدونم اسم کچکش تاهر خانوم بود. با کدوم کاروان اومدین؟ اسم مدیری کاروانو میدونین؟ بله. آقای داوودی بله یه لحظه اجازه بدید حاجه اقا داوودی از حسینی سیدو شهده تو این دیسکه نداریم تایر خانم نداریم چیزی به ذهن حانیه میرسه و شادش میکنه. میگم شاید به اسم اصلیش نام کرده باشه. اسم شناسنامش ایران دخته. میشه به اون اسمم یه نگاهی بندازیم؟ نه. نه ایران دخت نه تایر خانم. امیر سریع تکون میده و تأصف میخوره از کارهای هانیه. هیچ اطلاعات دیگه ازش نداریم؟ چرا؟ گفت که دوتا پسر داره. یکی از پسراش تو شلم چه منتظرشه. قراری یه چیزی ازش بگیره. و یکی از پسرهاش هم سال 63 تو فکر شهید شده. دیگه گفت یه نوه داره که عکاسه. اسمش محمد رزاست. امین. اجازه بدیم من از طریق دوستای خودم تو حسینی سید و, و پیگیری کنم ببینم کسی از ایشون خبر داره یا نه بعد به شما اطلاع بدم خیلی ممنون آج آقا خواهیشو کنم امیر و حانی از دفتر خارج میشن. همیر من باید پیدا شد مطمئن باش دیگه الان اصلا برای مهم نیست که بخوام چیزی رو به تو ثابت کنم الان مثلا بر خودم جدیتر شده دست از لجبازی بردار بابا همه ی آلم آدم دارم میکن اصلا همچین آدمی وجود نداره تو اکساتم که چیزی نیست هانیه تو با کی داری لجبازی میکنی؟ من کار دارم بیبری نمیام اینقدر اینجا میمونم تا تا هر رو پیدا کنم هیچا خط من باور کردیم امیر هیچ وقت الان برو به کارت برس بفعل آمد آمیر امیر خواهش بکنم دنبال من نیا خواهش بکنم خانی توی تپه ماهورهای شلمچه سرگردون می‌گرد و قدم می‌زنه به بقایای جنگ نگاه می‌ندازه دست میگیره و شروع میکنه به اکاسه اکس تاینک هایی به جا مونده از جنگ اکس پیر مردی که به نماز ایستاده، اکس پیر زنی که مشغول دعا خوندنه اکس خانمی که کنار سیم های خاردار ایستده و اکس سقایی که به زائر های شلمچه آب میرزونه نگاه حانیه مکسی روی سقا می و به طرف اون می نفس نفس همون از تپهی بالا می آتا به سقا برسه پاسی آب را از سقا می گیره و جرعه می نشه ممنون این بار نزدیکتر به سقا ازش اکسی می ده. سال ها پیش تو دوره جنگ من اینجا بودم به رزمنده ها خدمت میکردم نوکریشونو شما میکردم حالا هم هر وقت دلم میگیره هر وقت کم میارم میام یه مدت اینجا میمونه به زایره خدمت میکنم حالم خوب میشه خاک اینجا حال آدم رو بهتر میشه. انگاری آدم گم شده خودش رو اینجا پیدا میکنه حانیه دورگینشو بالا میاره تا یه اکس دیگه بگیره که ناگهان بوی آشنا به مشام حانیه نمیسه دنبال بو به اطراف سر میگردونه. زنی رو تنها میونه یکی از خندقها میبینه که بین خاکها رو میگرده. دوربین رو زوم میکنه روی زن و چهره ی زن رو میبینه. هانیه سر خوش و خوشحال از کنار سقا میگذر و میره به سمت تاهر خانم. تاهر خانم. کجا میری؟ نره اونجا خطرناکه. نگاه سقا متحجب هانیه ها رو دنبال میره. تاهر خانم حانیه بیتوجه به حرف سقا از تپه پایین میره و وارد کانال میشه تاهر خانم کنار خندق تابلوی خطر میدان میدانه میدنست شد و حانیه بیتوجه به تابلو به راهش ادامه میده تاهر خانم همچنان بین خاکریس ها به پیش میده باهای تاهر خانم مینی رو لگد میکنه و از اون رد میشه و بعد میم پشت سر تاهر خانم منفجر میشه انفجار آسیبی به تاهر خانم نمیرسونه حانه لحظه این نگران میسته و بعد شتابون میدوه دنبال تاهر خانم گوشه پلاکی از خاک بیرون زده لبخندی روی لبایی تاهر خانم میشه تاهر خانم میشه تا پلاک رو برداره پلاک رو بر میداره و میبوزی عشقی از چشمان سراسیب میشه تاهر خانم قدمی به عقب بر میداره و باز پاهاش با میره روی می چند انفجار و خاک همه جا رو تیره و تار میکنه تاهر <تصفيق> خانم قرق خون شد و دستش با پلاکی که تو خودش داره بعد چند لرزش آروم میگیره و بی حرکت میداره حایی هر آسون به سمت توره خانم می که اون هم قدم به مینی می و مین مفاجر میشه حایی با سری خونی نقشه زمین میشه دو مرد با هیکل های ناوا به طرف حایی می دهن. هانیه اسوش میره هانیه با سری بانداش شده روی تخت خوابیده فاراستورس سرم هانیه رو بررسی میکنه و بعد امیر و هانیه رو توی اتاق بیماران تنها میذاره. هانیه به آرومی چشمشو باز میکنه و به خوش میاد. امیر هم لبخندی میزنه و به چشای هانیه چش میدوزه. سلام. چی شده امیر؟ جنگ رو انداختی؟ مینت رکندي. سام درد می‌کنه. سرت کوچولو شکسته. دستت هم ترکش خورده. ولی زود خوب می‌شی. نگران نباش. امیر تو مادر خانوم. علیش چطوره؟ دیدیش؟ امیر سکوت میکنه صدای در شنیده میشه و امیر میره تا در رو باز کنه. یا خازمی سلام علیکم. حاجی اتاق میشه. سلام علیکم. بفرمایید. خدا را شک رو که بفهمیم میدیم بهترین که انشالله. تاریخ خانم علش چطوره مقبول هم. ما تاریخ خانم شما رو به پیدا کردیم. دو تا بیسارد داشتیم، حسین و جعفر. آره میدونم. الان کجاست؟ الان خدمات نارس میکنم. بیسارد بزرگش سال شصت سه تو فک که بیش از پسر کچکشم از سال شست و پنج مفقود الاسر بوده یه جایی حوالی شلمچه مفقود الاسر؟ ولی اون گفت پسرش تو شلمچه منتظرشه مسئله همینجاست تایر خانم اومده شلمچه به دنبال اثری از پسر مفقود الاسرش منطقه منطقه نه الان این چی؟ ها اشاره به امیر میکنه که بقیه داستان رو تعریف کنه ببین هانیه تایر خانم شلمچه بوده ولی نبا تو چی بگه امیر خودم از تهران باش اومدم تایر خانم چند ماه پیش اومده شلمچه تو سه شب قبلش بارندگی شدیدی داشتیم. سیلاب معلوم نیست از کجا با خودش مینهای تأخیری رو شسته و کشیده تو کانال. تایره خانم هم میره داخل کانال پی نشونی از پسرش. همونجا درست محل شهادت پسرش پاش میرومین به شهادت می‌رسه. وقتی رسیدیم بالا سر تایره خانم تو دستای پر از خونش تونستیم پلاک جعفر رو پیدا کنیم و یه تصویح پاره که فقط شست و سه تصدونهاش رو پیدا کردیم تصویح تصویحش پیشه منه هانیه، به خدا راست میگم الان تو جیبه ما انتومه برو بیارش خیلی خوب هانیه، باشه بری بعد امیر خواهش میکنم حاجی به امیر میفهمونه که به حرفهای حانیه گوش بده اونو هاش. امیر با تردید به سمت مانتوی حانیه میره امیر دست به جیب مانتو میبره و یه ها از تعجب گرد میشه دستش رو از مانتای هانیه بیرون میکشه و تسبیحی با دونه های فیروزهی از اون بیرون میکشه آره خودشه بله بله. همین تسریب بود امیر شروع میکنه به شمردن دونه های تصبیح این تصبیح دست شما چیکار کار میکنه؟ تاهاره خانم خودش به هم داد بخواستم ازش عکاسی کنم امانت پیشم مون یادم رفتش برگردونم خیلی عجیبه فقط شه سو ستا دونه داره از این نخه تصبیر پاره شد بعضی دونه هاشو پیدا نکردیم من خودم براش نخ کردم و قشه از دوسته مونده بود یعنی چی ها اگه همچین چیزی اصلا امکان داره الله و عالم چه ارز کنم؟ چرا امکان نداره؟ که بهت گفتم تو باور نکردی زمنم یه اتفاق عجیبی دیگه هم افتاده درست همون جایی که شما رفتین رومین در اثر انفجار یه حفه باز شد بعد از اینکه شما را از اونجا بردن بیمارستان بچه های تفحص یکی از شهدارو اونجا پیدا آه. کردن پسر کوچیک تایر خانم جعفر انگار یک کسی شماره رو اینجا تا اون رو برای ما پیدا کنید ما مدت بود که دنبال رو میگشتیم شما باسه پیدا کردن جعفر کمک بزرگی به ما کردیم کمک؟ بله هم به ما هم به تایر خانم این غوتی هم اونجا زیر خاک چی هست؟ فکر کنم یه فیلم عکاسیه، ظاهر نشده باید مال یکی از شهده باشه فکر کردم شاید شما بتونید چاپش کنید هاش کازمی غوتی فیلم عکس رو به هانیه میده هانیه دست زخمش رو جلوی بینیش میگیره و اونو بو میگشه عشق کاملاً صورت هانیه رو مرگرده امیر و هانیه راه برگشت رو پی می‌گیرن. تسبیح طاهر خانوم به آینه ماشین امیر انگرا شد هانیه نگاهی به تسبیح میندازه و دستی به اون می‌کشه. امیر جان هانیه میخوام یه نمایشگاه بذارم از اکسای این سفرم. با این نگاتیوها. آره. چقدر خوب. منم هر کمکی از اسم بر بیاد انجام میدن میخوام همه رو دعوت کنم بیار عالیه محمد رزرم میخوام دعوت کنم محمد رزرم آره نبه تاهره خانومه اون اوکاسه آره خیلی خوبه آدرس خونه تاهره خانومو گرفتی؟ آره از هاچکازه میگرفتن تو جیب همه. میخوام تو آهر خانومم دعوت کنم مطمئنم که میاد مچمعه من به برگی توی دستش نگاه میکنه و دنبال آدرس نگاهی به پلاک های ساختمون ها میندازه بلاخره میرسه به درهی که روش تابلوی حسینی سیدل شهدان نصب شده زنگ در رو میزنید در باز میشه و جوانی از در میاد پیرون سلام سلام ببخشید من یه آدرسی داشتم از خانومی به نام تاهره که تو سفر راهیان نور به جنوب بایشون آشنا شدم ولی فکر کنم که آدرس و اشتباه اومدم چون اینجا که نه خانم درسته دست سال پیش هاش خانم خدا بیامرز خونه رو وقف حسینیه کردن جده؟ بله اتفاقاً با عصبانی اون سفر راهیان نور همین حسینیه بود ببخشید میتونم کمکی بهتون بکنم؟ بله من یه امانتی خیلی مهم تو شلمشه به دستم رسید که یه جورایی مربوط میشه به خانواده تاهر خانم میخواستم برای یه کاری در مورد این امانتی از خانوادشون اجازه بگیرم. شما آدرسی چیزی از خانواده شون دارین؟ راستش من نوی طایر خانم هستم آقا محمد رضا؟ بله شما منمیش نسید؟ بله طایر خانم در مورد شما با من صحبت کردن گفتن که شما مثل من عکاسید تو هم سفر که با هم بودیم بله شما تحجب نکردین؟ تحجب؟ نه من مادر بزرگم و خیلی خوب میشنستم این همون امانتیه من یه نمایش که زادم از عکس سفرم با تاهره خانوم خوشحال میشم شمام تشریف بیارید بله حتما با کمال میل. ممنون خدا نگهت خدا نگهت ببخشید اینم ببرید فکر میکنم جاش توی نمایشگاه شما بهتر باشه احساس میکنم همه یه جورایی میخوان که این نکسات اونجا نشون داده بشه حالیه توی تاریک خونه زیر نور قرمز مشغول آموده کردن نگاتیف هاست با دست زخمیش نگاتیف ها رو از ریل در میار و نگاهی به تک تک اونها می نسه ورقه های کاغذ اکاسی رو توی تشت ظهور می دازه و عکس ها یواش یواش روی کاغذ نخش می بنده اکس ها مربوط میشه به چند تا رزمنده که دور هم کنار سنگر نشستن نمایشگاهی برپا شده و بازید کننده ها مشغول دیدن اکس های نمایشگاه هستن اکس های زیارت کاروان راهیانه نور بازید ها دور اکس ها جمع شدند و درباره اونها با هم صحبت کنند بین عکس‌ها، عکس‌های سیاه و سفید هم دیده میشه که مربوط به دفاع مقدسه همون حلقه فیلمی که به خانه داده شده امیر دمه در نمایشگاه استاده و با افتخار به نمایشگاه و بازید ها نگاه می‌کنه. هل لحظه هم به بازید کننده ها اضافه میشه محمد رضا نبیه تاهر خانم همه نمایشگاه میزه با امیر دست میده و وارده نمایشگاه میشه محمد رضا نگاهی به اکسام این و گشت توی نمایشگاه میزه بازیت کننده ها به حانیه تبریخ میگن و حانیه با سر از اونها تشکر بکنند. حانیه محمد رزا رو زیر نظر گرفته تا ببینه اکس و اون چی و رضایت داره یا نه. شاگردی هانیه خودشو به هانیه می‌رسونه و دستی به شونه یومون میزن تو که با این اکسه بختن به تبریک میگم واقعا فاقلاده بود حانیه جون چند تا از بچه در مورد یکی از اکسه ها بسوال میشه بیار بچه هانیه حانیه رو آوردم همه دور اکسی جمع شدن و هانیه هم به جام ازافه میشه این نکس برای بچه خیلی عجیبه سن انگاری چواهتی به عکس های دیگت نداره دیمونم انگار یه جور راز بیمگی توشه ببین حتی اسمش هم عجیبه و اینک بهشت یشی خورو در مورد این نکس برامون توضیح بدی اصلا قضیهش چیه این یکی از بهترین عکس منه یکس از بهشت این که هیچی ندارم در موردش بگم هیچی هیچی اکسی که توجه همه رو جلب کرده همون اکسیه که قرار بوده تا حال خانون توش باشه و فقط حاله ای مبهم از تصویر پس زمینه دیده میشه تصاویر رنگین پرچم ها که توی باد در حال رخصیدن و همه مبهم و نوازه هستن حانیه با چشمای تر خیره میمونه به عکس به همراه بقیه بازید کننده ها امیر باز هم خوشا آمد میگه به مهمون ها و بازید کننده ها و نگاهی به تماشاچی های نمایشگاه میدازه از دور حانیه رو زیر نظر میگیره که با اشتیاق از نمایشگاهش با بقیه حرف میزنه و لبخند رضایت روی لبهای امیر میشینه امیر انگار متوجهه چیز شده نگاهی به جمعیت بیندازه و حیجان زده به سمت حانیه میده حانیه حانیه حانیه یه بوی خوبی میاد یه عطر عجیب فکر کنم همون اطریه که خودت میگفتی ببین آره خودم هم حس کردم میدونستم که میاد مطمئنم که الان اینجاست مطمئنم امیر ممن نمیدونی چقدر خوشحالم از اینکه منو باور کردی از این که تو هم بوی خوشداری احساس میکنی میخوام پرواز کنم امیر به سمت تابلوی و اینک بهشت میره و به تابلو خیله میشه لبخندی میزنه و به تابلو دقیق میشه عکس تاهر خانم یواش یواش روی تابلوی و اینک بهشت ظاهر میشه و امیر اونو میمید تاهر خانم با لبخند و سرخوشی از توی عکس نگاهش رو دوخته به نگاه امیر سلام تا ارخان این رادیو فیلم هم به آخرش رسید من آرمان قفاریان نویسنده و راوی این رادیو فیلم به همراه فرشاد آزرنیا سردبی و تهیه کننده و علی حاجی نوروزی صدا بردار هم درود می فرستیم به روح بزرگ و پاک مادرانی که پاره های تن خودشون رو با افتخار تقدیم میهنمون کردند و در دل خودشون گریستن بلی نزاشتن کسی این عشقها رو روی گونه هاشون ببینه خاک پاک قدمهاتون رو سرمه چشم هامون میکنیم حق نگهدارتون.